خشا شیراز و وضعی مثالش خداوندا نگهدار از زوالش زرکناواد ما صد لوح انشاء که عمر خز می بخشد زلالش میان جعفرآباد و مصلا ابی رامیز می آید شمالش به شیراز شیرازای و فیض روح قدسی به جوی از مرد و به صاحب کمالش که نام قند مصری برد انجا که شیرینان ندادندن که آولش سبازان لولی شنگول سرمست چه داری آگهی شونه است آولش اگران شیرین پسر خونم بری زد دلا چون شیر مادر کن علالش مکن از خواب بیدارم دارم خدا را که دارم خلوت خوش و خیالش چرا حافظ چون می ترسیدی از هجر نکردی شکر ایام به سالش. چرا حافظ چون می ترسیدی از هجر نکردی شکر Aio anne mesao